هیچ چاره ای نداشتیم. آخر هفته ها که ترینا میآمد ترتیب خوابمان به هم میخورد و خانواده کلارک بازی شبانگاهی مفصلی راه میداخت و از این اتاق به آن اتاق جابجا جا, به جا می شد و همه در بهدر میشدند. شب شنبه بعد از شام مامی و بابا اتاق خوابشان را تقدیم می کردند و و ترینا اطمینان میدادند که ذرههای سر سوزن سختشان نیست. و بهتر از توماس در اتاقی بخوابد که با آن آشناست. ترینا هم قبول می به گفته آنها اینطوری همه خواب خوشی دارند. اما خوابیدن در طبقه پایین برای مادر و پدرم به این راحتی نبود. مادرم عادت داشت با لحاف و بالش و حتی ملافه خودش بخوابد رخت خوابش می بایست همانطور که دوستش باشد تا خواب راحتی کند. در نتیجه بعد از شام مادرم و ترینا رخت را از روی تخت مادر و پدرم جمع می کردند و رختخواب نو جایش می محافظ تشک هم می برای مواقعی که توماس دچار مشکل می شد. پدر و مادرم را تا می کردند و گوشه ی اتاق نشیمن می گذشتند. بعد هم توماس روی رخت شیرجه می رفت و ملافه را روی سندلی های میز نهارخوری می کشید تا خانه درست کند. پدر بزرگ هم اتاقش را اهدا می کرد ولی طرفدار نداشت اتاقش بوی نسخه های کنه و زرد مجله ریسینگ پست و توتون میداد تمام آخر هفته طول میکشید تا بو برطرف شود گاهی احساس گناه می کردمم همش تقصیر من بود با این همه میدانستم که نمیتوانم پیشنهاد برگشت به اتاق قوطی کبریتی را بدهم آن اتاق کوچک و خفه و بی پنجره برایم کابوس بود از فکر اینکه دوباره توی آن اتاق بخوابم نفسم میگرفت. بیست و هفت سال داشتم. نانآور اصلی خانه من بودم. نمی توانستم توی اتاقی بخوابم که در اصل گمد بود. یکی از این آخر هفته ها پیشنهاد دادم که شب خانه پاتریک بمانم. پیدا بود همه نفس راحتی کشیدند. ولی کسی بروز نداد. شب که خانه نبودم توماس با انگشتن چسنا کش بردم را خراب کرد و با ماژیک روی لحاف جدیدم نقاشی کشید. برای همین مادر و پدرم تصمیم گرفتند خودشان در اتاق من بخوابند تا ترینا و توماس در اتاق آنها بخوابند. اگر توماس خرابکاری به بار میآورد دیگر مهم نبود. اما باز هم مجبور بودند تخت را جابجا جا کنند و کلی شوشو انجام بدهند. به اعتراف مادرم خوابیدن من در خانه پاتریک جمعه شب و شنبه شبها کمک زیادی نبود بعد هم مسئله خود پاتریک مطرح بود پاتریک حالا یک آدم پاک باخته بود تمام هوش و به مسابقه بود خوابش، خوراکش، زندگیش، همه چیزش شده بود ورزش آپارتمانش که همیشه مرتب بود حالا از کاغذ مختلف مربوط به برنامه ها و رژیم غذایی ریخت و پاش بود تو سبک وزنش توی راهرو بود و من اجازه نداشتم دست بزنم. چون خود پاتریک وسایل ورزشیاش رو کار گذاشته بود و اگر من دست میزدم شاید از تعادل خارج میشدند. پاتریک به ندرت خانه بود. حتی شب‌های شنبه و یک شنبه. با توجه به ساعت کاری من و تمرینهای او، ظاهراً عادت کرده بودیم که همدیگر را کم ببینیم. می توانستم دنبالش بروم و تماشا کنم که میدان را دور میزند و دور میزند تا تمریناتش را کامل انجام دهد یا خودم تنهایی در خانهاش بنشینم و گوشه کاناپه چرمیش کس کنم و تلویزیون تماشا کنم هیچی هم توی یخچال پیدا نمیشد البته به غیر استکه های سینه بوغلمون و نوشیدنی های انرژیزا با قلزت تخم غواقعه من و ترینا یک بار امتحان کرده بودیم ولی به قدری بد بود که توف کردیم و عین بچه ها درآوردیم و اوق زدیم. واقعیت این بود که از آپارتمان پاتریک خوشم نمیآد. پاتریک سال قبل وقتی مطمئن شد مادرش به تنهایی میتواند زندگی کند آن را خرید. کاروبارش هم رونق داشت. به من گفته بود بهتر است یکی از ما دو نفر یک آپارتمان کوچک هم که شده بخرد. با این حرفش من خیال کردم به زودی باب صحبت را باز می کند و با من در مورد زندگی مشترک حرف میزند ولی چنین نشد. هر دو معذب بودیم و اهل اینکه سر صحبت را باز کنیم نبودیم. در نتیجه به غیر سالها دوستی من هیچ چیزی در آن آپارتمان نداشتم. هرگز نتوانستم چیزی در این مورد به پاتریک بگویم. ولی خانه کوچکی پدرم را با همه شلوغی و حیاهویش به آن آپارتمان تک نفره بیروه روح و کسل‌کننده ترجیح میدادم. با اینکه آپارتمان پاتریک پارکینگ اختصاصی و چشمنداز به قلعه داشت. گذشته از آن، آپارتمان پاتریک کمی پرت بود. اگر به پاتریک میگفتم جواب میداد، کوچولو، برنامه‌هایم خیلی فشردند. اگر توی این مرحله مسابقه کمتر از 3 کیلومتر بدوم از برنامه عقب میافتادم. بعد جدیدترین آتل ساقپایش را نشانم میداد یا میگفت اسپری هوای گند را برایش بیاورم وقتی هم سر تمرین نبود به جلسات تمام نشدنی با سایر اعضای تیم رفته بود تا درباره تجهیزات و تدرکات نهایی سفر صحبت کنند نشستن کنار آنها مثل حضور در جلسه کره ها بود اصلا از حرفایشان سر در نمیآوردم خودم هم علاقی نشان نمیدادم قرار بود هفت هفته دیگر همراهشان به نروژ بروم. هنوز نمیدانستم چگونه به پاتریک بگویم که از خانواده ترینر تقاضای مرخصی خصیص چطور می توانستم؟ تقریبا یک هفته بعد از شروع مسابقه قرارداد کاریم به پایان می رسید. شاید به ترزی بچکانه موضوع را پشت گوش میانداختم. ولی واقعیتش این بود تنها چیزی که می دیدم ویل بود و ساعتی که تیک تاک می کرد. بوی هیچ چیز دیگر مهم نبود. تنز بزرگی روزگار این بود که توی آپارتمان پاتریک اصلا خوابم نمیبرد. صبحهایی صبح هایی که از آنجا سر کار می رفتم صدایم خسته و بیحال بود و قیافم طوری که انگار به هر دو چشمم مشت زدن نمیدانم چرا نمی توانستم آنجا درست بخوابم من هم با بخیالی سایه های سیاه دور چشمانم را با کرم پوتر می پوشاندم. بیل گفت کلارک چه خبر؟ چشمانم را باز کردم کنارم بود سرش به یک طرف کج شده بود به من نگاه می حس میکردم از مدت قبل آنجا بوده و نگاهم می کرده ناخداگاه دستم به دهانم رفت چون ممکن بود آب از گوشه لبم راه افتاده باشد فیلمی که مثلا داشتم می دیدم به پایان رسیده و حالا تیتراش با دور کند پخش میشد. خودم را صاف کردم و گفتم آه شهرمنده خبری نیست. فقط اینکه اینجا خیلی گرمه. با دقت به صورتم نگاه کرد و گفت تو این سه روز گذشته سو این باره که خوابت می بره. پچوریم از قیافه افتادی. و من هم تمام داستان را برایش تعریف کردم. از خواهرم گفتم و از برنامه خوابمان. گفتم اصلا دلم نمیخواهد سر این موضوع جار و جنجال راه بیاندازم چون هر باری که به صورت پدرم نگاه میکنم، نومیدی مطلق را از قیافش میخوانم. برای اینکه نتوانسته برای خانواده خانهای تهیه کند که همه درن جا شوند. هنوز کاری پیدا نکرده؟ نه. بگمونم دلیلش سنه بالاش باشه اما ما حرفی نمیزنیم. شانه بالا انداختم. هیچ کس راحت نیست که اینو بهش بگه. یک جورایی حس می کردم کار درستی نمیکنم که برای ویل از مشکلاتم می گویم. در مقایسه با مشکلات او واقعا ناچیز و پیش پا افتاده بود. گفتم « مهم نیست عادس میکنم. همه چی رو به راه میشه باقیه بعد از ظهر به نظر می رسید حووااس ویل جایی دیگر است و مشغله ای فکری دارد بعد از اینکه کارش شص شروع رو انجام دادم آمدم و کامپیوترش رو روشن کردم وقتی نوشیدنی آوردم صندلی چرخدار را به طرف من برگردند گفت خیلی ساده است انگار داشتیم با هم حرف میزدیم و وسط مکالمه بودیم آخر افتما میتونی همینجا بخوابی. اتاق خالی که داریم. گاهی استفاده شه. ما تو مبهوت ماندم. لیوان همینطور دستم بود. نه. نمیشه. چرا نه؟ بابت ساعت اضافی که موز نمیدم. لیوان را در جالیوانی صندلی چرخدار گذاشتم. مادرت چی فکر میکنه؟ چه میدونم. حتما قیافم پریشان و مضطرب بود چون اضافه کرد اشکال نداره من که جام امنه چی؟ اگه نگرانی که مباد و نقشه سری شیطانی برای از را بدر کردن دارم فقط کافیه دو شاخه صندلی چرخ از برق بکشی چه مسخره حرفم جدیه در موردش فکر کن اینم یه راه چاره اما نگران نباش آزا و احوال از اونچه چه تا فکر میکنی تغییر میکنه شاید خواهرت با خودش فکر کنه که نمیشه که هر آخر هفته بیاد خونه شاید با کسی آشناشه. هزار چیز ممکنه پیش بیاد در دلم به او گفتم شاید هم دو ماه دیگر تو نباشی درچه از خودم بدم آمد که این فکر را کردم وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت گفت چیزی به بگو. چرا این رفیق بگو تو به خونش نمیبره گفتم اوه. چرا؟ نگاهی به من که گویی میخواست دنبال بحث رو بگیره ولی بعد پشیمان شد همونطور که گفتم میتونی در موردش فکر کن درمو دو هفته پیش توی خیابون دیدی؟ آره. داشتم رخت های شسته را روی بند پهن میکردم کردم تناب در جایی که خانم ترینر اسمش را باغچه آشپسخانه گذاشته بود پنهان بود به گمانم دوست نداشت چیزهای بدنمایی مثل رخت های شسته نمایی باخچه اش را کند مادر خودم افتخارش بود که لباس سفید را پهن کند و گیره بزند انگار همسایه ها را به چالش دعوت می کرد. خانومها بزنید به چاک فقط پدرم بود که توانست مانه شود و نگذارد مادرم رختآویز چرخشی دوم را در حیات جلویی بگذارد ازم پرسید که تو به هم گفتی که دیدیش؟ سعی کردم قیافه بیتفاوتی بگیرم اه. بعد که دیدم منتظر جواب است گفتم معلومه که نمیگم با کسی بود گیره آخر را داخل کیسه ی گذاشتم و کیسه را لوله کردم و انداختم توی سبد خالی لباس ها. م? آره. یه زن؟ آره. با موهای قرمز؟ آره. ویل به فکر فرو رفت. گفتم. ببخشید اگه فکر میکردید که باید میگفتم. اما به من ربطی نداشت. گفتنشم راحت نبود. آره، کلارک، شاید گفتنش کمی آروم هم کنه. ولی باید بگم که دفعه اولش نیست. گفت و رفت داخل خانه. هر روز وقتی ویل تلویزیون تماشا می کرد سرگرم کار دیگری بود، من پشت کامپیوترش می نشستم و دنبال معجزه بودم تا ای پیدا کنم که ویل را خوشحال کند. اما زمان میگذشت و میدیدم فهرست من از کارهایی که نمی انجام بدهیم مکانهایی که نمی برویم به نسبت آنچه میتوانیم بسیار بلند بالاتر است. وقتی اوزارا را دیدم دوباره سراغ سایت اتاق گفتگو رفتم و راهنمایی خواستم. ریچی گفت: «سلام زنبور به دنیای ما خوش آمدی از صحبتهایی که متعاقببا پیش آمد فهمیدم مست کردن توی صندلی چرخه خطرات خودش را دارد از جمله مشکلات مربوط به سوند، سقوط از صندلی چرخدار، گاهی هم توسط سایر افراد مست، اشتباهی به خانه های دیگران هدایت می‌شوند. فهمیدم که هیچ جایی وجود ندارد که برای افراد فلج از چهار دست و پا مناسبتر از جاهای دیگر باشد، اما گفته می‌شد پاریس بیش از هر مکان دیگری در دنیا با صندلی چرخدار نامهربان است و این نومید کننده بود. با این همه بخش خوشبین وجودم همچنان امیدوار بود به آنجا سفر کنیم شروع کردم به نوشتن فهرست کارهایی که نمی انجام بدهیم سوار شدن به قطار شهری اغلب ایستگاه های مترو آسانسور نداشتند که عملا نصف بیشتر فعالیت را که در لندن میشد انجام داد منتفی می کرد مگر اینکه با تاکسی می رفتیم رانندگی در پایتخت تخت کاری نبود که به هیچ وجه از عهده من برایت شنا بدون کمک. مگر اینکه درجه حرارت آنقدر بالا باشد که در همان دقایق اول شروع به لرزیدن نکند. اگر استخب بالا بر نداشت، رختکن مخصوص معلولان هم به کار نمی آمد. ویل هم نمی گذاشت او را سوار بالا بر کند. رفتن به سینما، مگر اینکه جایی در ردیف جلو گیرمان می آمد. یا آن روز ویل دچار گرفتگی از نبود. دسته کم بیست دقیقه از فیلم پنجرهٔ عقب را چهارده پا خزیدم و پاپكرنهایی را از روی زمین جمع کردم که پرش ناگهانی زانوی ویل به هوا فرستاده بود رفتن به ساحل مگر اینکه لاستیک صندلی چرخدار پنه باشد مال ویل نبود رفتن به خرید مگر اینکه در فروشگاه ها سطح شیبدار کار گذاشته باشند بسیاری از فروشگاه‌های اطراف قلعه اعلام می‌کردند که با توجه به شرایط موجود امکان چنین کاری را ندارند که البته برزی ها درست میگفتند رفتن به جای بسیار گرم یا بسیار سرد. بیرون رفتن بدون برنامه ریزی قبلی. ساک باید آماده باشد و مسیرها از نظر قابلیت دسترسی بررسی دقیق شوند. رفتن به رستوران در صورتی که اعتماد به نفس وجود داشته باشد و مشکلی نباشد که در حضور دیگران غذا به دهانش گذاشته شود یا بستگی به شریعت سوند دارد. دستشویی رستوران در پاگرد پلکان باشد. رفتن به خانه دوستان، مگر اینکه یعنی شیب شیبدار مخصوص صندلی چرخدار داشته باشند. اغلب خانه ها پله دارند. ویل می گفت کسی نیست که مایل باشد به دیدنش برود. بیرون رفتن زیر باران در تپهزار به ترمزها نمیشد اعتماد کرد و صندلی چرخدار سنگین بود و من نمیتوانستم آنه سر خوردن شوم رفتن به جایی که میشد لبی تر کرد. ویل برای افراد مس جذابیت داشت که نرش خم میشدند دم و نفسشان را به طرف ویل می دادند و با حالتی ترحم آمیز نگاهش می کردند واقعا گاهی هم میخواستن به خودشان ببرند به جاهای شلوغ، داستان نزدیک بود و گردش در اطراف قلع سختتر میشد نصف بیشتر جاهایی که فکر می کردم می برویم نمایشگاه، نمایش خیابانی، کنسرت منتفی می شدند. وقتی در به در دنبال ایده نو بودم در اینترنت از افراد توانخواه پرسیدم که چه کاری را توی دنیا بیشتر از همه دوست دارند که انجام بدهند. جوابی که بیش از همه گرفتم این بود ازدواج. بدون اینکه درخواست کرده باشم مفصلا برایم توضیح دادم اما کمک بزرگی نبود فقط هشت هفته وقت داشتم و هنوز به نتیجه ای نرسیده بودم یکی دو روز بعد از صحبت در حیات وقتی برگشتم خانه دیدم پدرم توی راهرو ایستاده است. غیرعادی بود. هفته های اخیر با این ادعا که پدربزرگ بزرگ تنها نباشد روزها روی کاناپه کنار پدر بزرگ می نشست. بابا پیراهن اتو شده پوشیده و اصلاح کرده بود. راهرو بوی اولد سپایس می میداد. مطمئن بودم این افترشیو رو از سال 1974 دارد. اومدی؟ در راه پشت سرم بستم آره خسته و بیحال بودم در راه بازگشت به خانه تمام مدتی که سوار اتوبوس بودم داشتم با تلفن همراه با یکی از آجانس مسافرتی درباره جاهایی که میشد شد ویل را برد حرف می زدم. اما هر دو گیج و ویج مانده بودیم اشکالی نداره امشب خودت تنهایی چایی بخوری نه بعدا شاید برم بار پیش پاتریک چطور مگه؟ گتم را به قلاب جالباسی آویزان کردم. حالا که ترینا و توماس نبودند، جالباسی خالی بود. مادر تو شامی برم بیرون. لحظه ای طول کشید تا متوجه حرفش شوم تولدش <تصفح> یادم رفته؟ ما جشن گرفتیم. صدایش را پایین آورد. انگار رازی در کار بود. رفتم سر کار. <تصفح> نه بابا حالا می توانستم ببینم که از خوشحالی سر از پا نمیشناسد دوباره کمرش صاف شده بود نیشش تا بناگوش باز بود سالها جوانتر به نظر می رسید بابا چه عالی میدونم مادرت از خوشحالی تو آسمونها سیر می کنه خودت میدونی که این مدت خیلی بهش سخت گذشت وقتی ترینا رفت بابا بزرگ و همه اینا برای همی فکر کردم شام ببرمش بیرون کنیبش خوش بگذره خب حالا کارت چی هست مسئول حفاظت شدم نگهبان قلعه مش زدم اما اینکه که آره، آقای ترینر درسته زنگ زد و گفت که دوباره کسی میگرده دوست دویل بهش گفت که من هستم امروز بعد از او رفتم و گفتم که چه کارایی از دستم هر میاد یک ماه هستم از شنبه هم شروع میشه م... میخوای واسه پدر ویل کار کنی؟ آره گفت که طبق روال کار باید یک ماه کار کنم گفت که فکر میکنه بعدش کارم درست میشه ها. چه عالی حس خاصی داشتم این خبر به نظرم عجیب میامد و یک جورایی پریشنم کرده بود اصلا نمیدونستم دنبال کسی می‌گردن. منم نمیدونستم. لو عالیه. آدمشناسه. در مورد بلوط سبز باش حرف زدم. بعضی کارهای فرد قبلی رو نشونم داد. باورت نمیشه شکه شد. گفت که از کار من خوشش اومده. سرزنده و سرحال بود. ماها ندیده بودم اینطور سرحال و زوغ زده باشد. مادرم پیدایش شد. کنار بابا ایستاد. روژه زده و کفش پاشنه بلند شیکش را پوشیده بود. لو بهش ماشین دادن ون. حقوقش هم خوبه، بیشتر از پولی که کارخونه مبسازی میداد. مادرم طوری به پدرم نگاه میکرد که انگار دنیا را فتح کرده است. چهرهش وقتی برگشت و به من نگاه کرد، می میگفت که من هم باید خوشحال باشم و خوشحالیم را نشان دهم. در صورت مادرم ها پیام نهفته بود. یکی از این پیام ها میگفت که باید بگذاریم بابا لحظات خوش خودش را داشته باشد بابا چقدر عالی فوقالعاده است جلو رفتم و بقلش کردم خب عزیزم در از از ویل تشکر کنی یه بار است. دستشون میبوسم که به یادم بود سر و صدایشان را می شنیدم که از خانه خارج میشدند. صدای مادرم که دم آینه شلوغ بازی در میآورد و صدای پدرم که به مادرم اطمینان میداد، هنوز مثل گذشته ها زیباست و وضعش مناسب. بابا دست در جیبش کرد کلید و کیف پول و پول خوردش را کنترل کرد. بعد هم زد زیر خنده. صدای در آمد. پشتش هم صدای ماشین و دور شدنش. حالا فقط از اتاق پدر بزرگ تلویزیون ی روی پله نشستم. گوشی تلفن همراه, همراه را در آوردم و به فیل زنگ زدم. کمی طول کشید تا جواب داد. او را با هنسفری مجسم می کردم که دکمه را با شست فشار می داد. الو کار تو بود؟ لحظه ای مکس. بعد کرارکتایی؟ تو برای پدرم کار جور کردی؟ حس کردم لحظه ای نفسش بند آمد از خودم پرسیدم یعنی حالش خوب است فکر کردم خوشحال میشی خوشحال شدم این فقط نمیدونم احساس غریبی دارم. اح نداشته باش پدر دنبال کار بود پدر منم به آدم ماهر احتیاج داشت واقعا؟ نمی توانستم تردید و ناباوری را از آهنگ صدایم دور کنم. واقعا؟ چی واقعا؟ هیچ ربطی به چیزی که پریروز ازم پرسیدی نداره. در مورد اون و اون زن. مکس طولانی کرد. می توانستم تجسمش کنم. توی اتاق نشیمن و از پنجره مدل فرانسوی به بیرون زل زده است. صدایش وقتی به گوش رسید محتاطانه بود فکر کردی از پدرم هم و سکوت گرفتم و وادارش کردم برای پدرت تا کار جور کنه؟ چون این چیزی واقعا دور از ذهن بود آه ببخشید فقط یه جورایی به نظرم عجیب اومد همزمانیش همه چیز با هم جور در می اومد <تصفح> خوشحال باش خبر خوبیه اوزای پدرت خوب میشه و این یعنی ساکت شد یعنی چی؟ یعنی یه روز میتونی بری بگردی و پروبال بگیری و پرواز کنی بدون اینکه نگران والدینت باشی که چطور میخوان زندگیشونو بگذرونن با این حرفش انگار سیلی به صورتم زد احساس و خفگی میکردم لو؟ بله هر ساکت شدی؟ من آب دهانم را قورت دادم. ببخشید حواسم پرد شد بابا بزرگ صدام میکنه ولی بلی ممنون نمازد ممنون که سفارش رو کردی باید تلفن را قطع کردم بغض راه گلویم را بسته بود و مطمئن نبودم بتوانم کلمه دیگر حرف بزنم پیاده تا بار رفتم هوا مملو از بوی شکوفه بود و مردمی که در خیابان از کنارم رد می شدند لبخند بر لب داشتند ولی من قادر نبودم در جواب لبخندی بر لبانم آورم فقط می دانستم نمی نمیتوانم در خانه بمانم و غرق در افکارم شوم دوستان پاتریک همه در حیات بار بودند در گوشه تاریک روشنی دو تا میز به هم جفت کرده بودند دست و پاها همه زیر نور صورتی آنجا تند و زاویه دار بود. چند نفر برایم سرتکان دادند. ولی هیچ دختری سرتکان نداد. پاتریک بلند شد و کنار خودش برایم جا باز کرد. در آن لحظه آرزو کردم کاشترینه پیشم بود. فکر نمی کردم بیای. چیزی میل داری؟ کم کن. فقط میخواستم بنشینم و سرم را روی شانه پاتریک بگذارم. دلم میخواست مثل سابق باشم. آرام، آسود خاطر و بی دقه. دلم نمیخواست به مرگ فکر کنم. امروز رکوردمو شکستم. 24 کیلومتر تو 7-9 دقیقه و 2 ثانیه. چه خوب. یکی گفت. پد. عالی عمل کردی. کرد و مشتش را بالا گرفت و با دهان صدایی ایجاد کرد من تلاش میکردم خودم را خوشحال نشان دهم واقعا عالیه نوشیدنی سفارش دادم دوبار به صحبتشان در مورد افت کارایی پاهای پوسته پوسته و حملاتی که هنگام شنا در اثر کاهش درجه, درجه حرارت پیش میآیت گوش دادم بعد دیگر گوش ندادم و به مردم توی بار نگاه کردم دلم میخواست خواست زندگی آنها چگونه است. حتما در زندگی خانوادگی همه اشان حوادثی روخ داده است. بچه های عزیزشان را از دست دادند. رازهای پنهانی، خوشیهای بزرگ و تراژدی اما اگر آنها می توانستند حوادث زندگیشان را در جای خود قرار دهند و زندگیشان را بکنند، اگر آنها می توانستند در یک اصراف آفتابی در حیات بار بنشینند و لذت ببرند، پس چرا من نتوانم؟ بعد به پاتریک خبر دادم که پدرم کار پیدا کرده است. چهرهش لحظه تغییر کرد. حدث می زدم خودم هم همین قیافه را پیدا کردم. مجبور شدم دوباره تکرار کنم. فقط برای اینکه مطمئن شود درست شنیده است. اوه چه دوستایی سمیمی. حالا هر دو برای اون کار میکنی. <laughs> بعد دلم خواست به او بگویم. واقعا دلم می‌خواست برایش توضیح بدم که همه چیز فقط مربوط به تلاشم برای زنده نگه داشتن ویل می‌شود. می‌خواستم بگویم نگران هستم که ظاهرم ویل تلاش می‌کند آزادیم را برایم بخرد. ولی می‌دانستم نمی‌توانم چیزی بگویم. خودم می‌توانستم از عهده‌اش بربیایم و بقیهش را هم باید خودم حل و فصل می‌کردم. فقط این نیست. میگر و خاصا شب شب‌خونشون بمونم؟ اتاق اضافی دارن تا مشکل کم بوده اتاق تو خونمون حل شه پاتریک به من زد. تو میخوایی توی خونه اونا بمونی؟ شاید پد لطف بزرگیه تو که خودت از خونه ما خبر داری تو اونجا نیستی ببینی دوست دارم بیام خونه تو ولی خب راستشو بخوام اونجا راحت نیستم همین طور به من زده بود خب راحت باش مثل خونه خودت احساس راحتی کن چی؟ بیا با من زندگی کن وسایل تو بیار لباس و هر چیزی که دوست داری حالا وقت شده که با هم زندگی کنیم بعد که فکر کردم متوجه شدم وقتی داشتیم پیشنهاد را میداد اصلا خوشحال به نظر نمی رسید مثل مردی نبود که سرانجام فهمید است نمیتواند بدون دوست دخترش زندگی کند و میخواهد اتحاد دلنشینی از زندگیشان بسازد. لیافش شبیه کسندی بود که اسم کنند نقلوب حریف شدند. واقعا دوست داری بیام با تو زندگی کنم؟ آره معلومه. گوشش را مالید. منظورم اینه نه اینکه ازدواج کنیم یا اینجور چیزا. متوجه هستی که آره همون آدم احساساتی عاشق پیشه لو یعنی میگم حالا وقتش رسیده البته مدت هاست که وقتش رسیده ولی من درگیر کارهای زیادی بودم بیا با هم زندگی کنیم عالی میشه قلم کرد عالی میشه بچه های گروه امدن خودشان را بی توجه نشان دادند و صحبت هایشان را از سر گرفتند وقتی یک گروه گردشگر ژاپنی اکثر که می‌خواستند گرفتند فریاد شادی به هوا رفت صدای آواز پرندگان می‌آمد خورشید پایین رفته و زمین چرخیده بود می‌خواستم بخشی از آن باشم نه زندانی در اتاق و نگران برای مردی با صندلی چرخدار گفتم بله عالی میشه